معتاد چیست؟ اکثر ما برای جواب دادن به این سوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب می‌دانیم. زمانی تمام زندگی و فکر و ذکر ما به نوعی در مواد مخدر خلاصه شده بود. ما همیشه یا مشغول گرفتن و مصرف کردن آن بودیم و یا به دنبال راه تعییش می‌گشتیم. ما زندگی می‌کردیم که مصرف کنیم و مصرف می‌کردیم که زندگی کنیم. خیلی ساده معتاد زن یا مردی است که زندگیش را مواد مخدر کنترل کنند ما کسانی هستیم که در چنگال یک بیماری مزمن و پیش‌بونده گرفتاریم و همیشه عاقبتی چون زندان، تیمارستان و مرگ در انتظارمان است ما معتادانی هستیم که در حال بهبودیم و اکنون به طور مرتب گرد هم می‌آییم تا به کمک هم پاکی خود را حفظ کنیم این برنامه یک برنامه پرهیز کامل از هر گونه ماده مخدر است. پیشنهاد می‌کنیم که در این مورد روشنبین باشید و این فرصت را از دست ندهید. برنامه ما مرکب از اصولی است که بسیار ساده بیان شده هم و ما می‌توانیم آن‌ها را در زندگی روزمره خود بکار بدیم نکته بسیار مهم این برنامه عملی بودن آن است. هرکس که مایل باشد بدون در نظر گرفتن سن، مذهب، نجات و جنسیت میتواند به ما بدن. چرا اینجا هستیم؟ ما اختیار زندگی خود را کاملا از دست داده بودیم و دیگر نمیتوانستیم مانند دیگران زندگی کنیم و از آن لذت ببریم برای زندگی به چیزی متفاوت نیاز داشتیم و تصور میکردیم که آن را در مواد مخدر پیدا کردیم برای ما مواد مخدر مهمتر از خانواده و همسر و فرزندان ما شده بود و میبایستی آن را به هر قیمتی به دست می‌آوردید در این راه بسیاری مردم لطمه شدید زدیم اما بیش از همه خودمان را آزار دادیم ما برای خاطر نداشتن جنبه قبول مسئولیت‌های فردی در واقع خودمان برای خودمان گرفتاری درست کردیم می کردیم و اینطور به نظر می رسید که نمی توانید زندگی را آنطور که هست قبول کنیم اکثر ما متوجه شده بودیم که اعتیاد مان یک خودکشی تجریجی است اما اعتیادی دشمن زیرک زندگی قدرت انجام هر گونه اقدامی از ما سل کرده بود در نهایت بسیاری از ما کارمان به زندانها کشیده شد بسیاری دست به دامن پزشکان روانپزشکان شدیم اما هیچیک از آنها برای حل مشکل ما کافی نبود بیماری ما همیشه یا دوباره اطمی کرد و یا بدتر بی شد توجه شدیم که ما افرادی بیمار هستیم و از این بیماری رنج بردیم که درمان شناخته شده ندارد اما به هر حال میتوان آن را در نقطه از فعالیت باز داشت و پس از آن امکان بهبودی هم وجود دارد فقط برای امروز به خودت بگو فقط برای امروز افکارم را بر روی بهبودی هم متمرکز خواهم کرد زندگی می کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روز خوبی خواهم داشت فقط برای امروز به کسی اعتماد خواهم کرد کسی که مرا باور کند و می خواهد در بهبودی هم به من کمک کند فقط برای امروز برنامه خواهم داشت و سعی خواهم کرد آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم فقط برای امروز سعی خواهم کرد از زاویه بهتری به زندگیم نگاه کنم فقط برای امروز ترسی نخواهم داشت و به روابط تازهم و آنها که چیزی مصرف نمی کنند و راه تازهای برای زندگی پیدا کردند فکر خواهم کرد مادامی که این راه را دنبال کنم از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت. خداوندا، خداوندا آرامش تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. شجاعتی که تغییرم آنچه را که می‌توانم آرامش ی به این راه آمین. بفرمائی. ممنون، دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم. اگه یه پر از این پرتغالم به من بدی عالی میشه من نمیدونم مسیر به این کوتاهی چقدر خنزل پنزل گرفتی یه چیزی میدیا بابا تو این هفته این بار صدومه دارم بهت میگم بالو ویاره ویار میفهمی؟ ویاره؟, می فهمی؟ ویاره؟ <تصفح> ما رو بگو فکر کردیم تو برای ما آوردی تو با این وضعیت اصلا چرا اومدی؟ کمربندم که صفت بستی حداقل میذاشتی تا کم خودم بشیدم پشت رول نمیدونم چرا چه این کارا رو میکنی تو اگه من مرده باشم تو رو تک و تنها بفرستم من خودم باید بیام اونجا رو ببینم خیالم راحت شه یعنی چی شما رو که اجازه نمیدن بیای کمپ تو دم درش که میتونم بیام فردا همین موقع خودم میام دنبالت چی فردا هست <تصفح> کی خانم من باید بیس و یه روز اون تو بمونن چی میگی بیست و یک روز میدونم خیلی سخته از وقتی منو تو با همزه باش کردیم تا حالا نشودن دیگه تنها بذاریم همه اینا رو میفهمم البته یه شب بود و اون موقعی که مادر دینا اومده بودن من رفتم خونه دوستام آخه تو وقت بیاری شاهین میشه چرا بهم نگفتی اینقدر طول میکشه فکر نمیکردم انقد ناراحت بشی گندت بزن. خواهش میکنم فقط 21 یه روز بیس و یه روز تا بیار سور و مور و گنده صحیح و سلامت میان بیرون اول میدم میخوام ست سالی سیا برمه گردی با ما بهزیم وای سوری خانم خیلی سلام بعد از دو سال خود تمام فقف و فامیلو رو برای شام دعوت کردی حالا من با این شکمم چجوری جلو اونا راست بشم چه خاکی سرم بگیرم خیلی نداره که زنگ میزنی کنسلش میکنی؟ حتماً آره یکار فاکو فامیل منو نشناختی از فرداسی که پوشدارم صفه بذارم فاکو ردی میگه من اینجا دارم می‌رم پایین ببینم آقا من دست بگیر من قرار بود اینجا بیام باشم من سر کوچه برم یه لحظه باش یه لحظه باش یه وحش آره اگه اصلا کیه سلام حالا چطوری من بهش ببین اصلا کیه تو گفتم برای بهزور بیاری اینجا آبا. آبا. آبا. آبا. آبا. آبا. مامان خودت جایی زدن مامان من مامان مامانم مامانم مامانم آقا مامان من ببین مامان من مامان من بیچاره مریض اشتباهی زنگ میزن آتش نشانی یو شما میای سر وقت اینقا پیرزنو نکن مریضه مریضه یه آژانس بگی من بابا آقا چی گشتی تو سرت بود چیزی که من میدونی که قانون مملکت میدونی چی چی قانون مملکت میگه یه نفره اگه سه قدم به زور ببری میشه آدم ربایی. آقا خودمونم داریم. اصلا تو چند وقته میکشی؟ من؟, من بچه بچگی میکشتم. من 6 سالم بود میکشتم. 6 سالم بود خط میکشیدم. بعد چیکار کردم؟ رفتم دایره نقاشی میوه میکشتم. بعد 13 سالم بود زدم تو کار هیوندر. لوکسو ما و رو خوش نمیاد. نه نه, نه دست منو ول نکن میگم این بره بچا. خودمون آه این کاری میکنیم بابا باشت با بینم دوستات را بریم بشینیم و هم یه ناره توپ بزنیم بعد من یه آجاز بگیرم برو خونه بشم آره بیا بریم نه نه باشت بزن بچه ها نا چی داریم باب بوش بچه ها دیزه کیه دیزه کی میزنه اقلا یه نفر میزنه یه نفر میزنه بسنه شو بگم برون بشه هم بگلماییم نه بشه هم برونه یه برو نه میشه اه آقا قاسی گیریتن من که آقا با درد میگیری یا نه چه جای خوبی آقا آقا قشنگی چی هست؟ بح عجب حیات قشنگی داری خوشحال شدم خوربان چما کیفا من با آجانس اوه آه آه آه ولی خوشم اومد از اینجا براوکیمی حیان جای خیلی قشنگی سوالتون سلام سلام باباستم سیگار دار او ببین میشی جون اصلا گور بابایی و مهمونی کرده تو فقط به من قول بده که این دفعه دیگه ترک میکنی همین من هوشنگ رضی از این به بعد قول میدم که دیگه به هیچ مواد مخدری لب نزنم خب اینو که صد بار حالا گفتی این دفعه فرق میکنه چه فرقی میکنه همیشه هم همینو میگی میگی فرق میکنه هی hey, بابا فرق میکنه دیگه زنای مردم وقتی شوهرشون میخوان ترک کنن تشویقشون میکنن هزار تا جایزه میدن زن ما رو ببین همش نفوسو بد میزنه هوشی جون مردای زنای مردم وقتی ترک میکنن یک بار یک بار اونم برای همیشه است نه هر روز هر روز بابا اینجا فرق داره اینجا بعد از ترکم به آدم زنگ میزنن اللحاز روی و روانی کار میکنن که دیگه دوباره برنگردیم به بواد مخدر واقعا؟ بله واقعا <تصفح> همش داری یه چیز دیگه این میگی من این حرف میزنم تو یه چیز دیگه این میگی بابا خودت اومدی اینجا از نزدیک شاهده این مسئله هستی دیگه آره حوشی جون ولی میتونی من نگهرانم میترسم میترسم نگران نباش میتونم به جون خودم میتونم به جون تو میتونم به جون همایون میتونم همایون بچه رو میگم دیگه <تصفح> حالا کی گفته قرار اسمش همایون بشه من گفتم من دوست دارم اسمش همایون باشه خوبه خوب برای خودت باریدی و دوختی خوشی جون اسم این بچه سروشه سروش ببین من تو این یکی مورد باز شوخی ندارم ها اسم این باید همایون باشه همینی که گفتم باشه ولی یه شرط داره چه شرطی شرطش اینه که اگه شما رفتید اون تو و ترک کردید اسمش میشه همایون و الا اسمش همون سروشه قبوله سخته ولی قبوله آقای معترم یاد بگی. با پای خودش خودش اومده خب این معتاده. من که معتاد نیستم من یک علاکی میگیرم ورمیدارم یارن اینجا دا این خوب من مزهرمیتون شدم بیاقا چون یک فرمان پار کن برای ترکم دست شما دارد نکنم ایشالله ایشالله بکرد با من دست شما ما پای لقی با این صحبت کنیم خیلی ممنون نیستی خوب هستی آقا موشنگ خیلی خوش اومدید میگم بهت نمیخوره پنج و سه سال سندش دوشید چه تو مگه؟ نمیخوره پنج و سه سال مال ارسه بین آقا چون اون جای سه و پنج عوض کرده آقا به جون خودم به جون همه تون من تحت تقییبم و میریزن اینجا میگیرنم واسه شما بد میشه ای من شما رو جایی نایدم نه خیلی قانون بینی قاله باشه ندیده باشم بعدن که میتونم ببینم؟ ها؟ ببین نترس سر تو آخرو خودت باشه و به کار خودت برسی از اینجا. چشم قو، من کوچیکه دام چشم چشم نو کردم آقا حرف حساب کتاب نداره. میگم که آقا ازش رو شما به چه کاری مشغولی؟ حالا اون روزی 8 ساعت بعضی وقت با اضافه کاری 12 ساعت در خدمت بر بچه دیگه. هم بچه که اینجا وایسته، یکشنبه می‌جوشیم وایسته. قدر رشید کار بچه ها چیه؟ برای این بچه دور منم من هست من رو گرفتم زیر بالو پر خودم. هم بهشون هست خوبه حالا شما چند وقتی داری مصرف میکنیم وقت مصرف نکردن ازا مواددی نیستن اصلا یاط ندارم من بیایم اجتماعی خوردیم به ت درست تعطیل این درست تعطیل بچه ها کسی ما هم ماام کشیدیمیل خب خب اماون توی تو این کمپ ما یاد بگیرید دیگه اون یکی دو روز هم نزنیم خب نکشن ماام نمیکشیم دیگه هر کسی نکشی که من نمی که. که تا ازاف کسی بکشم من نمیکشم با این تفای تو به کمپ ما خوش اومد او مخلصه آقا مهد آقا آقای تا بیلی چکر برو با ما خود آه. خوب داده من هوشنگ رضی هستم آزی. اومدم ترک کنم میشونه به سلامتی آه. از اینجا برام بیرام بله خوش اومدی خوش اومدی میگم که چطوری شد یهو تصمیم گرفتی یه بیشی ما راستش چجوری بگم یه جوری برای تداوام نسلم اومدم اینجا راستش من ازدباش که کردم به خانمم قول دادم یعنی یه بچه تورایی داریم قبل از این که بچه به دنیا بیاد من پاک بشم و برگردم به نظر خودم هم اینه که بچه از کچگی وقتی به باباش نگاه میکنه میفهمه که این بابای به خون مرد شممرد حلاج تورایی یعنی شما تورایی کسی هم قراره بود بیاد اینجا تا اینجا بله امینه در جون اصلا دود و دم و این حرفا؟ دورون نداری، اول کی نداری؟ کشومادی آغازشون، کشومادی. ای ای ای. نکام بزن. اگر روی دیوار، کهند نداریم. کسی رفت؟ شکوه نامه. بپاهم. کسی رفت؟ کننده کی است؟ کننده کی است؟ چیه؟ چیه؟ چیه؟ چی چی؟ چی؟ من اون دیگه اسمش بچه هاست. چرا اسمی؟ ماه کسانی که موتاک نیستند، من چیزی نمیکشند. کی بچه ها جلویی میکشند. لباس وش میاد، زود سا سا لو واسه سایو شرم میمنونج اینجا <تصفيق> چه خبره اتاق بازرسی بدنیه میرید تو لخت میشین میگردنت یه موقع شیطان گولوت نزده باشه چیزی با خود وردی بیاری اینجا مردم از سر من من اگه می‌خواستم چیزی با خودم بیارم که نمیوردن تو کمپ همون بیرون می‌کشیدم چه حرفیشون می‌زنید من گوشم از این حرفا پره روال کمپ میفهمی روال کمپ یعنی چی روال کمپه که آدمو بیاری اینجا لخت کنید ببینین جنس دارن یا نه چرا حرف میزنی تو مقررات کمپه باید بری تو به گردنت دست درد نکن روش گذشت <تصفيق> سلام خیلی اونتو باله این <تصفيق> اینو کنش جاساز کرده بودی بابا اونو نمیتون بگم بچه ها جاساز میکنن من که اتیاب این رو چی در اومده؟ برو تو ببینم اجازه بده شاید ایشون سابقه داره فرقی نمی آقا برو تو خود معرف اومدم اینجا دلیل نداره خودم با پای خودم برم اونجا لخوا قوانین کمپه برو تو کارش نمو شد بیانش بخواهم ببرم ایسالا زمدادایی اجازه بده من عمرن اگه پا ما بزرم ببینم تو کجا؟ کجا؟ کجا؟ سلیل واسه تو در بیارم خیلی خوش اومدید بچا. سرآمد باشی. صم برام آگی. خب. اینجا کجاست؟ اینجا سالن سمزدایه. یعنی چی؟ ببین دوستایی که مهمون ما هستن، چند روز از اون 23 روزی که تو کم قراره بمونن و تو این سالن میمونن، تا خماری پس بدن، تا سم بدنشون خارج شه. بهجور راحتت کنم مثل سی سی اوه معتادا میمونه. چرا معتادا؟ خوش باله ما که احتیاط نداریم. اون هواکش کار میکنه؟ آره کار می‌کنه. کردام. راحت‌تر کردام. اراده میخواد به شرطی که خودت هم بخوای من خود معرف اومدم خودم میخواد دوست من اینجا تخت شماست اون تختم مال شماست فقط یه خواهشی ازتون دارم اینجا نیاز به آرامش داره سکوت رو رعایت کنید آهسته برین آسه بیاین ببین چی بهت میگم آرامش اینجا حرف اولو میزنه بفر به سر جات بشین بفر خیلی ممنون من همینجا می‌شینم راحت دست در آخه دوست من اینجا جای من ه شرمنده. اما من واقعا تخت سخت دیگه همینجا همینجا بیا بیا من یه خیلی موزونم شم. همینجا اینجا میشینم، ام اینجا میخوام. مربوط نداشت. راحتم. راحتم باشه. بیا پایین. بفرمای راحت باشیش. من راحتم کلا. بیا پایین. راحتم هم ازم. راحتم. فردا میخوای نه؟ نه بابا. آقا بازاد؟ ایو کردم. خرخت کردم. رفتم بابا. بفرم بفرم بفر سر چشم خداوند ما را تنها نخواهد خواهد زندگی من یه ماجزه است وسوسه هزار چهره دارد و شهر باشه خدا یاد کمک اون خراب آه... <تصال> خماره بیا بش بش بیا بیا بکش چی بیا بکش دیگه بیا بیا داری چیز چه زوتنه نگفتی مگه نمیبینی حالم چقدر بده کو اینو میسوتنه اسکنی کنی منو؟ اسکنی چی؟, چی را... من بده. چه اینجوری میکنی؟ از خورده. من امروز که دارم بهش مایه پات میکنم. یه نشرمین چرا با من بازی میکنی. ای بیا به با... مردم خوبی کن. گیونه. کرده سر. کرک کرک. کلاک کردم. کلاک کردم. کلاک کردم اما. کردم میل کمک کمک.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 دمت گرم بگی, دمتگا. دمتگا. بگی دمتگا. دمتگا. خدا خیرت بده اومده بودن منو هک کنم ببرم کره ماه بزاک برام بود وقت داشه بده آقا چی میخوان جونم بس کن دیگه خونه زود کجا میری برمی گاش می کنم مگه روز اولی که اونجا همه چی برات توضیح دادن چرا روز اول توضیح دادی ولی روز اول با الان سخت منم میدونم سخت منم میتونم زمین تا روز اول سخت یه روز اومدی اینجا من مهندسی که شغلی پروژه دارم زود شان هات برسه پشت در زدی من غلط بکنم بذارم نمیذارم گل مینم ببینید شما اون نبودن آره. ایه بیده، ایه بیده بر میگردم. کجا میری بر میگردی؟ تو بیست روز میمونم تو فقط به زمان برم. نمیتونه. ازت خواهش میکنم. بیا دوباره. آقا باشم توش بازماند اما. متی بیام توش بازماند. اش بازماند. او سیانس. کجا بردی؟ برا دادم. پاد زدی. نه، غلط بگم میگم نمیزنم. بنیمیم. من مرت میگم برم زود. بر خواهش کردم ازت. یه ازدواج دامپیون. نیاگر در تو. هر شو. سه دار دار بده بزن. نه بابا. خودا بده. نه نمیشه. نمیشه. ای بابا ای با من این همه‌تورا اینجاء چرخوندم. حالا ببین من بشم انتقل یه دور, تومن من... دور با با. از تو منه. نمیتونم نمیتونم یاسه من چون تنفای واسه خود بگیر ببینم. برو با. تو بزرگ مایی. ببین من بیام. نمیتونم برو تو سالون بگیر سرعت حالا بده چرا متوکل من خودم این روزا رو گذروندم. برو تو سالون. آقا حسین. آقا گوش کن حرف منو. پات برسه تو در زدی. من 20 بار گفتی چرا نمیتونی؟ نمیتونم دیگه. نه چرا خدا می‌دونی نمی‌فهمی چی با فلدجام فلدجام چی فلد پمپ کار نمی‌کنه برو کی فلدش وایسمال بده اوجنسیا اوجنسیا چیزی بگیوید بدبخ حالش چرا نمی فهمید شما درد یعنی چی زنگ زدیم بابا زنگ زدیم آره ولی آره زنگ به مادرم زنگ زدین آره گفتم بچه‌ها زنگ گفتی جونومت مریض است درست دست می‌دین آره آره حالا من کی مامانم نگهداری کنه من بمیرم من از من اینجا بمیرم من از من زینچا. بیاد. مما. نه نه اوجان شروع اوجان زحمتش میشه من خودم میرم دست دارم کلم. پیک برا خب کجا میری؟ آمی میگن فیلمشه مامانش هم میگه فیلم شه. فیلم بازی نمیکنه بدبر خالش بوده. چه این بچه؟ از سریش میگه شی درد دارد میکنه. ای ای ای ای اونا خیلی خرابه که. اینم سمو کجوا کجا داخل می‌کنه اینجا تا من آره آره آره آره اینجا چی آیی آیی آیی اینجا خیلی این و این و این برای پروچ اینجا چی آیی آیی آیی آیی دردس کافه پم شلو شد ز اینجا از اینجا هم زد اونجا اخ اخ به اونجش هم زد جون تو این حالش خیلی خرابه خدا آقای محترم میدونی نکنه مریضی ها؟ این همون مریضی جا... فرار تو. آره آره آه، نه نه نه نه نه, نه،, نه،, نه،, نه،, نه. میدونی دماشم چیه؟ شکل شک خودمو این درخت بسطه حیاتو آه، آه، آه، آه... زور وازوی ما مغرب رو تو برن افتاد, افتاد افتاد اصلا؟ این دستش افت اس ene شد ایوالله برو پول چات خب دیگه بخواب یادش اومد قرمه زنگم زام اون جانسای قرمه تو براش حالا بهتر شد سرت نخوره اونجا آره نه آره اگه احیاش خودم میرم دیگه اورژانس زحمت ندید آره قرمه تو برم ببینم پسر جو. چرا حواست نیست اصلا بیا نه فرشا ولی حواست که هست تو تو دو فاشی داری نه بس چه این که حتما توجیه کنم بیا خوش, خوش هم اومد اگمی کردم توهم زدی ولی میبینم کارت درسته من پاتم بارها صحبت کردم و گفتم که آقایون اینجا راه فرار نداره بی خودی انرژیتون رو مصرف این کارا نکنید. چرا؟ واسه اینکه دادش راه فرار نداره مثلا اقدام به فرار شده نمونش آقایش مند آقایش مند چی شد دادش گرم برم؟ باید شهرمندگیه آقا بزور آخ آخ یادم انداخته هیچ نباید فراموش کنم اون لحظه ایش اولایی که هیچ موقع نصیبتون نشه من تا جایی که یادمه فقط بالا دیوار رفتن یادمه بعد یکی دو ساعت که به خودم اومدم دیدم لتو پاره لتو پاره لتو پاره لتو پاره که دوست دارن لتو پاره دیوار بیان پایین داداش اقدام کنن اجازه رخصت مهمون داریم بیا تو بفرمایید خوش اومدی بخ بخ یادم رفتن جونم سلام علیکم سلام علیکم میام چه معنی خوش اومدین صلواتم و آمدنی نه درس موجوده بله داشتم میگفتم آقای اون اینجا دیگه اونجا نیست یعنی اینجا اونجا نیست یعنی, یعنی چی؟ من آن بدن ما بیرون ما رو از سالم سبز و اینجا آوردن اینجا, اینجا هر من که هیچ تقدیری تو خودم احساس نمی نداری اگرم با این یارو بزرگه که من می بینم دیگه فرار مرا رو با از ذهن خارش کنیم هشت شب خاموشی آیا خاموشی ولی من نگه ما... اسمول به من مثل سربازی آقا ببخشید یک کفتر رو کلاتون نشسته اون کفتر رو میپرونم اسم اینه بریمی سقا جون بح بح بح, بح بح بح آقا بزرگ تفلک مریضه مریض نشونش نشنش پدامستم اون درخت ما دنبال این مریضاست بله داشتم میگفتم داشتم اینجا نظم و ترتیب حرف اولو میزنه هر قفلی یک کلیدی داره قفلی اینجا کلیدش درست منه چه بله بعد خوردن قضا ما تو همین سالون جلسه داریم زکی آیا تو باز ترک پست کردی داری چورت بزنی که والله به خوده آقا بذاری چطورت صبح بذاریم از عطمون نکو بذاری چورت بزنی ای بابا برای سال پاسد آقا جون، ولی قابل توجه آقایونه توهمی آقا، دورون عشق و حالتون سالون سمزدهی تموم شد آقای توهم، کاریت میکنم که چی؟ این کبوترو رو کلاق ببینی گذر، بالا که بی یا نه؟ اون سBE... من بلردن سوز چکمز رجب ایسره بیفی چکمش اوه تودمانن داگلد داگل آرفادن دا. چطنه کلده چطن کلد من ده چه بیدنه کچه آنانه ایل ورپسن ش دوباره علی نامه لذت میشه، این دیده میلگویم. تازه دیس نیه جالب، اچون نه چه دفعه جالب سه بچویی داره، آموزنی گاچ یا بیفی دفعه کی بی اما منم ده فلمسند باشم بجرسن ریلارم هممزو بامبخشمون علون رجم سن دینی سن از عبر کلمه دو بله بزن ندامه ندامه ندامه عبرمز شده بله بچنده پدرجان من واقعا به شما تبریک میگم واقعا بهتون تبریک میگه آقا میگه ما به زور آوردیمش ده دقیقه دیگه دبه میکنم بچه خفه من با پای خودم اومدم با پای خودم هم میرم پدرجان خدا را ست هزار مرتبه شک که شماها دوستانی که مثل نسال شما هستن میان برای ترک خداوند ادعاونتون بشن بی ما شرل میگم با نمک ماتیم هم همچنین اصل شما دنبی این داف خاکستری نشون این هر میزنه جابونه علی خادیم میگفتند خالی باندونا کوبار و ترند میگه سالهای پشت سر یه میزنیم که میذنیم که میذنیم که میذنیم که که میذنیم که میذنیم که که آقا بزرگ اینکه این یک روزه قبول کن 21 سالم نگدارم میمونم زنده شدم از بیرون به جای چهرق ادیدک سمپوشم دیگه نمورم ولایت دیگه نمورم ولایت دیگه نمورم ولایت آقا بفرمایید آقا جون قربون شکلت عرس میخوام عرس میخوام خواهش میکنه با عزتون و دیوار ما یک ید... هفت روزی همه اولش یه سالن دریم این بغل سمجوجاییه اصلا ناراحتی نداره یه ذره سختی داره اما خب نگاه به این بولبول صبونه بول با بابای من نکنم این یه, یه عمری کل می‌زنه پدر مادر منو در اصلا هیچ محاله آقای حسن من چه سرعت نپاشم ولی شدر اینجار تمادلی اومده کار کنه تموردی تمامالی چند تمام خالیه به به چونه تو یا میافتیم میبینی این میاد. آقا بزرگ جونفتهایی شما بشم شما دوست نداریم بند حقیق رو ببری اینجا نشونم بدی اقلا ببینم اینجا چه خبره این کجا من منو میخواد ببری اتاق زیر زمین تو, تو برنامه کاری اون این کاریش رقم نمی اما چون شما موسفیدی ب... بی اقا بازه بازه بازه بی اقا جون آقا بازه باشن دوتا سلامت م تو دارم شم باشم در زیر کباب وسیرم خوشنگی بخشم رو جنم خودم تنها بسوزم. بسوزم آقا بازارت اونجا خوش اومدی بفرمایید ممنون شما متشکرم اینجا سالونه آقا داداش من اینجا سالونه زمدداییه آقا یون آقا بازار سلام ممنون شما داداش من هفت رو اینجا آقا جون یه چادر روزم توی کیست تالو بهبودی او نسیم. آقاون آقا وزای مهمون جالبه اونه. چادر دو ذم کی؟ ماشاالله دادره بایستنم. ماشاالله ماشا ماشا باشه مهمون ما ایستیه گروز شما. میخوای ایستی؟ اینجا حالی کجی حالی کجی بچه میشه. ما باشید باشید باشید باشید سالم میریم آقای ببخشید ماشاالله به این سن چی میزنی چی میزنی هرچی دیدت بخواد میزنه چونه من آقای محترم چلتی که اما الان گفتم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 خب این محواتر هم نهای کن و اینجا هم آشپسخونه هم اونه آشپسخونه شبا یه نگاه بکن من را بیان آن یه نگاه بکن هم وقت گیره یه درت بیشتر از این بادرشت هم کس تش نکنم نمیزا کن برا این پولش هم فردا اگه میشه شاپو بالا آقا ببینی یارو پیر معدرت کال از خوش نده برو چونش من بابا این پ بسیگه شفر و گشنان کسی آنجا نیزگیر آقا میاده ها رفتو ما یه آقا یه آقا بزرم آقا مرکز آن با رفته آقا اونها آقا با کار رفتو سرکم عجب شعالتایی نه شعالاش معلوم بود نه باز خودش برید آقا رجب بسم الله شکر خدا رجب هستم یه معتاد حجر من عجل من زندگی نکبتوار منه شونزه ساله بودم با این مواد آشنا شدم نمیدونم میگن گوریز ریز میشه من ازم فکرشو نمی که بعد سالها این زندگی من باشه میشه سیمو داریم درد دل میکنیم و از خودمون هیچ وقت فکر نمی تو زندگی باید بشینم دور این جمع و از خودم تعریف کنم و ایزاما بگم و بگم چیکاره بودم من ازام ننمه برای اینکه ننم توهم زده ما یه روز یه مواد سفید گرفتیم بردیم خونه نصفشو کشیدیم رفتم تو پایین برگردم مامانم زده بود ما یادم دانشگاهی دانشگاه اخراجم کردن رفتم مباد بگیرم مواد رو جاسازی کرده بودن هرچی گشتم پیدا نکردم بعد اومدن او رفیقای او طرفی موانه گرفتن بردنم یه جایی که هرم نیمینداخت ما الان تو توهمه سال هاست من فکر مونه من معتادم یا منو میفرسته ترک کنم هر کار میکنم نمیشه من مواد میگیره میاد تو جیبم راه تو جیب لباس من میذاره بعد میاد میگه این چیه بعد برمیذاره دو در میکنه خودش میکشه من اپه این که آویزون کردم آویزون کردن که این ماجرا پاهمه حاصله من اجزم ننم اصلا یه روزایی کلافه مثلا الان دو... تو فکر کردم اگه ازدواج کنم از این قضیه رها میشم هر موقع هم دوست دارم اینو میذارم کنار ولی فکر نکردم که چجوری جوری آلوده شدم و میشم. الان اصلا چیزم بیقرارم. نانم میگه مال موادی که میزنیم. من میگم نه نه من مواد نمیزنم که من دیگه بیقرارم به خاطر تو بیقرارم. روزای اول به خاطر داشتن تمکن مالی در بهترین ویلاها با بهترین ماشینا و بهترین کسان مواد راه استفاده میکردن. مواد و مخدر آدمو به زلالت میکشونه. مواد و مخدر آدمو به بدبختی میکشونه. الان من همش بیقرارم نانم. اصلا کلافم نمیدونم چی یکی دارم مغزش تکون خورده دیگه مخه تکون خورده یکی دوبار بار با مایتا و ها پوشت مخدم زنم تو سرش خانم من بارداره بهش قول دادم که میام اینجا ترک میکنم میام پیشت ولی نمیدونم میتونم یا نه بارم تو خواب برقش زدم بس کردم گفتم شک بدم شاید برگرده این مغزه برگرده این توهم دیگه تو توهم نباشه ده نشد کارتون خوابی لجن خوابی تو جوب خواب بیدم یه بار از پله ولش دادم پایین پا شکست ولی مغزه چیزی نشد ولی به مرور زمان یک مرتبه چشم باز کردم دیدم در پارک های تهران دارم مواد مخدر مصرف رد گم کنی هم میزنم مثلا اصلا جلسه قرآن میذاره دایم صبح مره پارک با ورزش برزش میکنه واسه ردگم کنی من که میدونم میکشه وقتی که زنم وزه هم میکد من دو روز بعد متوجه شدم خبر نداشتم من که من میگه تو بیقراری واسه که خماری من میگم تو از کجا میدونی خماری از کجا ها پس داری میکشی دست مارم بگیرید که ما هم بتونیم رها باشیم و موا بچه که تو راهه قولی که دادم بتونم بهش کنم و راحت برم تو چشای خانوم هم میگاه کنم بگم من ترک کردم هی ما رو این فرسته ترک کنیم همون که بند نمیشیم همون روز اولا روز دوبه فرار میکنیم این سری هم اگه خدا خود باز فرار کنم چون بیقرارشم باید برم باره سرش باشم نه نه نه دیگه از شما دردم بچه ها دستاتونو بدیم به هم دیگه خدا من دارم خدا من دارم آرامشی عطا فرما تا به قدیرم آنچه ها که نمی‌توانم تحقیدم شعاقتی که تحقیدم آنچه ها که می‌توانم و آرامشی که تحقیدم را بدارم ام. آمین کس <تص> را؟ <UN> <تص> من که خوابیدم که این دفعه دوم من باشه میگم که چیزه الان وقتشه آن آره آن آره ببندیم آره آره آره آنه خوابه خوابه یک هران هم تو میگن چی؟ همین تازه عیس کردیم آخه آنه چه وقت بیرکن بابا زندگی همش عجز و ناله هست اصلا ما خاطر عجزمون داریم اینجا میریم بیرون باشو من جلو میرم تو پشت سر من بیا تو من <تصفح> یوده تا کمپ رفتم شونده بارش رو فرار کردم پس باعث افتفال ماز تو این فرار رو یوده هم فرار نه میریم تولد تولدی کیه؟ با جناقه بنده پس این فرار نیست جارو. نه این فرار میکنیم دیگه نیم ساعت دیگه میرسیم شخص سب کنیم بابا هفت کلومت که یه میرسیم به جده چی؟ هفت کلومت جده فالیک کاری تو بزن برین بعدن بیا بریم ببینیم چقدی لعنتی کوچو کوچو دست سنی yerde din biyo بعدن کاری انجام بده بابا آ بعدن سورپرایز دارم سورپرایز چی اخر چی چی با چا اس از yerde سورپرایز کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو پنگ آسیا بابا تو دیگه کیاسی بدون تون تون بکشی اصلا بیاییم برین تو راها بکشی الان میان حکمون میکنن برف که میاد به عشق تو غزل غزل سدا بارو میاد برف میگه باش نه ارزی تو میگه همون میاد قطعه اصلا دیگه دیگه میاد با تو نیستم سواره اصلا باست بارو دیگه بارو به تاخ بارو آها شما دوستا سوار دو تا موتورسیکلتای ماشین برید لب جاده رسیدین اونجا نوربالا بدیم ما بشون بشون رو به شما ملحق بشیم رفیق اون زنه باز به جاده خاکی ها قرشری <سؤال> بنده خدا رو بذار با این توهمش حال کنه هم بیافته دیگه توهم قیافته عین ولش گیشه خودت میچس خیلی خوشم اومد چون مراسم شو باز اینم اونات چیزی جاسوس کردی نه جونمشی یه بستورسو یه ذره جینز بوده بود یه روز من باادم جاسوس کرده بودم خره آقایونی که دلشون با زبونشون یکی نیست یارو 20 سال تخریب داره 20 سال ناپاکی داره 20 سال مصیبت کشیده و به زن و چش مصیبت داده و مکافات کشیده اما نمیخواد 20 روز اینجا بمونه و پاک بشه و آدم بشه اه. گفتم آدم اوشنگ خان. امرو میخواستی پدر بشی آدم بشی آقا بشی اخوی بگه میشه آدم پدر بشه و آدم نباشه با شما آقای نسبتا محترم میخواستی بری مادر پیرت رو ببینی با این حال احوال فکر کردی دارم تو رو اینجوری ببینه کف میکنه اشق میکنه بچه رو ببینه من کسا اتیاد ندارم نه آقا جون. نه من اینقدر شما رو اینجا نگر میدارم تا آدم بشین تا بفهمین رو اینجا بریم آقا ولی دماغ بزرگ شبی پایپه این آیون اون حوث آبتنی کرده آبتنی چیه دیگه؟ میخواد خیصه مون کنی. این سوا میخواد خیصه کنی آراغاجو، تو رو خدا آقا بزرگ بی خیال شو. میش میره سارانه بهبودی و دیگه علی. جون آقا جون، آواسه زینا باشه. بله، هر چی دوره ایام. بیا جو آقا جون. خوش اومدی. قابل تجا آقا جون. این داداشا تا صبح مهمون ما بودن. کجا؟ زیر درخت سخنگو. برای چی؟ بیا اینجا آقا جون. بیا اینجا. این منگولان تعویل بگی. چیکار؟ برای اینکه چی؟ خواستم ما رو دور بزنن، آنجا بیرون. چیکوفتم؟ خیلی آقای آقا جون میان ببینم هست بیا آقا جون؟ نه آقا جون بفرمای شما بیا آقا جون چیکار میکنی؟ کسی نگه کجا آخ... میری بچه؟ یاروشون رو برشتو بیار تو را به پاس داده که نعمت نداده حکمت و گرفته هایت که علته هست هر سرا حمد سپاس میگوییم آمین آشپس دست شما درک چرا زحمت چرا در ندادین کنار دریا چه خبرتی؟ برای اینکه خداوند خداونی کسرامون شفا بده مردگان همه شما را بیا مرزه یه سلوات محمدی پسند بفرستید. لاما سلال محمد بال محمد رو بیا کم بخور مریضی ججلر گوی موسانیت اقا زیاد هف نزن درگه شما فضا اونجا فراری معلومه سه سخت ها به که بغلبستیه باشه مخبر بزرگه این تورکرم داشته باشه بله که بزرگه منم چه جوری باشه؟ بایدم به من میگه کس را جرقه چطوری آوردی اینجا؟ بزرسی نکردم نگی؟ مثل بچان خوره مامم باشه اینجوری هم حالا اونها این نقطه همه هوایی؟ ام درم میبینم قدتم نه، دارم اینجای چون خواهیدین تو دارم یه بندو خدایی حالش خیلی بخیمه مشتی کن از بده تو کتاب کنیست بده یه چیزی بده ما بدیم نه، دارم دارم این بمیرم اممت ها. دوست دارم. ادامه بد. اما چردن. این سال هفت خاله و شاپور یک هم مرتب. باشه باشه شاپور باید برقصه شاپور جان چرا آبو نگاه میکنید بیا بریم سرده بابا تو این دریا رو رد شدی الان هم میگه بریم مرد معرفتم خوب چیزیه آخه این دریار من چجوری میامون وقتی قایق میز دریا قایقم <تصفح> کجا بود بیا بریم بابا من شمالی هستم ولی شنا بلد نیستم تو آ... رو خدای کمکی کن بیام من از این ور بر بروم و بر بر. آخر نکنم. هم بس... اما مسیس پاچه داری. گیر کردی؟ آره ای... تو دریا گرفتی؟ دی؟ آره دیگه خودت نمی‌بینی؟ باقی نداری. نه. پاروچه تو؟ نه. <متصفيق> باید پارو نزد وادا. باید دل رو به دریا داد. بیاییم و. یعنی چی؟ دست دستی می‌خوای منو قرار کنی؟ هره. آخر تو فکری با الام می‌گویم. من دستیا. خودت می‌بینی؟ من دست. <متصفيق> شوچی نی داری؟ مسکنش تو گبره. تو زاوونه اینو میفهمی. بیا ببین چی میگه. می <تصورت> دونی که من قریب نجاتم در سطح بین المللی. کو دست من از کردنیم. می ترسی؟ نه نه. چه چیزی دو به دست <تصورت> من از کردنیم؟ من شنا میکنم. مکمل نگیری. من شنا میکنم. نه نه نه. اصلا دست من <تصورت> از من اصلا دست من از من است. بالا. آب تو دارید نه؟ بالا بالا. بیا بیا بیا. چرا شنا میکنم؟ ایت اینو زدم باسته اینکه وقتی داری قرق میشی کی رو به خواهد قرق نکنی اینم زدم باسته اینکه این همه خلوچلبازی ها دیونازی در نهیلی اینم میزنم نهزم بزرگ نهزم میدونی چرا خودم میزنم به دیونگی باسته که بابام آقل بود بابام آقل بود منو نه نه خواهرم می کنمم بعد موقع بزرگ شد کرد خاک کرد ها بزرگ. ولی گرداه کردم او گرد و خاگش رفت و پیه بخش رو گیر دلت گرفته؟ دلم گرفته ولی خیلی دلم گرفته اما بیشتر دلم براشو نیستوزه ولی من دلم باهاشونه ولی وقتی خراب میشن منم خراب میشم ولی من منی اگه فکر کنی که من وقتی دستم رو ایدا میشه میخوام خودم رو بزرگ کنم. نمی خودم من آدم بشم از من بخورن بهتر از اینه که قریبه بخورن و به آشنا بزنن خودتو جلوشون بد میکنی که خوب شم خیلی بزرگی آقا بزرگ من بزرگ. بزرگ. آنیه که نمیذاره برای تو کچیگ نبیزن حیله کچیک بشه استا کریم بده کنیم اینو ها مثل من تو اینو اینجا بفهمن و اینجا برم بیرون چی کار داری؟ میتونم یه چیزی بگم؟ بگو او روز بوده که به چا در رفتن می کنم نباید می بودم پیشت نباید بیت می گفتم ولی به خدای عد و واحد قسم بود که کمکشون کنم این چه حرفیه لوتی؟ تو کارت درست بوده تو در حق اینا رفاقت کردی اشتغا نکردی نه پیش خودم فکردم که یعنی شاید اشتباه کردی عشقی تو کارت درسته تو رفته صبر صبر دیگه میخوام یعنی شیتالا رسوزه میشه یا جلن یا جلن در تو زور نماسه سلام شاپوزان جان کارید؟ من تو پیک موتوری کار میکنم منم با وانت میوه میفروشم چیه؟ میخوای پرتقال فروش پیدا کنیم بابا من نیمدم مهم حل کنم میخوام ببینم هستین؟ برو, برو برو برو برو به کارت برز ما هستیم ما اینجایی هستیم. هستیم هستیم تو برو بیان بابا من میخوام ببینم رو هستین یا نه؟ فرارو هستم نده داشت من نیستم کل لبیسیه روزو میمونم ترک میکنم بعد از اینجا میرم بابا مهندس تو هم ولمون کن ترک کنم و پاک بمونم بذار ببینیم شاپورجان چی میگه؟ یه نقشه مشتی واسه فرار دارم پیره مردر یادتون میاد. ات تو هاشم از ات تو خر پشتک رفت من دیدم آها مشکل ما فرار نیست که مشکل وسیله است <تصفح> آها یه راه عالی فرده شب دو ماهگی محمود سلطانه شما اگه یه حبس مغزی آقا بزرگو برید یه دقیقه وقت با من بدین من یه تلفن واسه رفیقم با ماشین میان کجا سر جاده جنزم میاره به سر ایم افتیم بیا منو ببر به سرده ای کمت هایشه ببینم لحجه قشن این همه موتا تو این کمت چرا ما انتخاب کردی؟ آها ببین این طبهم، حالی که به من دهت هیش که نده مندهی خدا به خاطر من کتک کر صحابه برایی، تککر نیستم شاپوره خوشگلم ها، بس اینجوریه منم رضا باش کردی؟ نه، مزرد مزردی؟ بله نرچه تهنان دیگه ها؟ شکر خدا محمود هستم یک معتاد در حال بهبودی به لطف فروردگار و با کمک شما دوستان امروز شدم شست رو آقا به افتخار تمام کسایی که ده ساله میکشن و معتاد نیستن بزن دست خسنگر آوایون باقیمانده کربلا مهدی معود صلوات بلند بفرست الله اکبر الله ما من فکر می‌کردم که این پیرمرد البته پیرمرد فقط موهای سفیده میگه که پیری شکستنی است که تعمیر ندارد ویرانه شود آن جا و مکانی که پیر ندارد چهارده روزی گذاشته بود اومدم پیشش گفتم که داداش بفرمو خونه و برو سر خونه زندگی گفت نه داداشت من هنوز پاهام سسته می ترسم برم دوره خراب شم من میونم تا اینجا خودم رو صرف کنم امروزم اون از من گو اقا من پایهام صرف شده میخوام برگردم بریادم سر خونه زندگیم سلامتیه این موسفید که زحمت کشیده خوشبنجر سوده دوباره سلامت بفرسید میگه بعض وقتا فکر نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود, که نمی شود. آقا بزرگ چورا؟ سلامتی آ سلطانم شده یه دعن واسی ما بخور در چشم داداش میگه لوتی قم هات چیه؟ به درد چیه؟ بگو بدخط کیه؟ بگو درد چیه؟ لوتی قم هات چیه؟ بگو درد داد چیه؟ حالت خوبه منم شاپور دادشم ساعت دوازدیشه کمپ شمسابات یعنی خیابون شمسابات کمپ شمسابات سنه این ازیان ایغالی آره آفری اونجا جوش تو کار به این کاران نداشته باش بابا من یه جایی هستم نمیتونم زیاد صحبت بکنم ولکن نسیحت کردنم بابا من شد سالمه آخو دیگه الان وقت ترک کردنه منی غلط کردم اومدم. بی کردم اومدم. مرسی <متصفيق> <متصفيق> ما با پدرت رفیق تو 34 ساله دارین. واس شروع کردن. بابا تو موهمو گرفتم پدرت خودش ترک کردی که به من داری میگی دلت برای من میسوزه. نه سوزه الله نه ناتیو خرم را کشیم دانو امید به من دانو برگذیو دانو شیرین به من دانو برگذیو دانو بچه او شو برکنو <تصفيق> چه <تصفيق> <تصفيق> بسه الان یا آه... بیا بیا بابا سر باش حالا بده زود باش, باش. آقا من نمیام تو دیشو ماوره گوشتی بالا پوشتم والا چی با والا می گیره موجوز دل عزیزم موجوز موجوز آره همه توهمی اش اش خیلی دوره خونه فامیل دوره آقا بزرگ نه که میخواد جامب کنی دستم داره داره ما رو میبره خونهشون عال کنه جدی میگی آقا آقا من میگم من میگم نریم خونه این رفیقت برای این که یه حدیدی وسطی کشیدارمون یه این زنشو داده میداد کرد بابا زن نداره که ما دهیر بابا باش باباش با من <تصفيق> بابا اما اون ها کنید میگم حالمون بده نگاه کناه به دماغم را افتاده خیس شده چرا حالیتون نیست نیگردانی اینجا بریم یه ساقیگیر بیاریم بزنیم جنس حالمون خوب شد بریم هر گروه بگوری که تو میگی آقا مردوی صاحبی تو بیابان خونه رو بزنی تو بیابن آقا کنم آقا قرم بکنه آقا من یه رفیق دارم گاراژ داره بریم یه دوتایی بگیریم بریم حالشو ببنیم آقا نظرتون چیه آقا حالی توفیل آقا ساکه ببین این رفیق من داری میگه که هیچ جننین بریم همین خونه رفیق رفیقه آمریکا آوا یونارو، استیدگان همه پیاده شد. این رفیق چه این بزرگه. آقا بزرگ، به خدا اینا غلام زاده. ای بی‌معرفت چیزوا. اسکو شام بزرگه نه؟ آقای شاهپورخان منگل سفاحت، شما یادت رفته بود که شماره را چی، ارو تلفون پاک کنی. شما بعد از اینکه تاشید داره شدی، امشبم چی؟ زیر درخت سخنگو مهمون ما افتاد پیادشون کنی کجا تو تو از مام داری بیشتر میکشی که نه نه. یک. نه نه نه. یک. من دیگه از این فرارا خسته شدم. اما باید از این خراب شده برم بیرون من هستم. کل رومان حساب کنید همون یه بار بده اعتماد کردیم واسه هفت پشتمون بسه آقایون من دو. این دفعه دیگه میخوام ترک کنم به خاطر همایونم که تو چند وقت دیگه میخواد به دنیا بیاد جون آقایون یک دو یک دو ولی فکر کنم یکی ما رو لو داده نامرد راست میگه فروختن بود باید پیداش کنیم حالا گیریم پیداش کردیم میخوای چیکارش کنی فرار ناکام تو ازش پس بگیری بذار پیداش کنیم ای. از این حرف گذشته من موندم این جارو اینجا چیکار کار میکنه ولی خب اینچه معتاد شده ای بابا یواش سشته یه سداتو میشنم به ناراحت میشه اونم آدمه دیگه آخه این که فلجه بابا ما فلجه کور داری مونشک با. فلج کور داریم منشک میفرسته فلج داریم فیزیکدانه حالا این بیچهاره معتاد نباشه مسطه بابا مسطه اه. سلام سلام خوبین سلام. چیزی حسا حقیقتی شدی که مالو تون تون, تون. های نامر تیزوه یه دیدین چیکارش مخواهی بکنی همان چیکارش مخواهی بکنی یکیش مکنی دیگه تو تو ما رو لادادی تو خجالا مگشدی بیمار خب ما فکر می فکر که اگه دوتون بدم شما برمیکرده اینجا میشه ترک میکنید شرمنده چون برو بابا گوشمون از این حرفا پره بیست یه روز پای. روزی تو فکر کردم. ولی الان کما بردم خود این... دیوانه احنا. تو که دو سه روز دیگه بیست یه روز تموم میشه برای چی ما رو لوددی؟ میدونم میدونم میدونم ولی امروز ما کم بردم میخوام فرار کنم امشب؟ آقا رو، روشی، رقصی، رو رو چی؟ رو رو چی؟ فرار نده داشت نیستم من به خاطر هماینجونم میخوام کل نبیسی یه روز اینجا بمونم و ترک کنم آبا تو هم مرا کشتی اینقدر هماین هماین هماینه بند خدا اگر بدونی که تو اینقدر خماری و درد میکشی راضی نیست تو همیشه آخر کاری اولین نفر فرار میکنی گوش کنید. من یه فکری برای فرار دارم. آقا من فرار اینو اصلا نیستم. آبا تو با ببینیم چی میگه. این آیت هست اون دیروز داش با بزرگ حرف میزد شنیدم که پول میخواست این برای ماجرا پول لازمه. میتونیم بخریمش. آقا من فرار اینو شدیداً هستم. دنجمون مونگاتون بزنین وسط بریم یارو رو بخریم دیگه. اگه پول باشه که خب میتونیم بخریمش موضوع که پول نیست دو چیز اینجا پیدا نمیشه یکی پول یکی مواد ولی یکی هست که پول داره کی؟ بزرگ ولی با جی بشه بزنیم کی بزنه؟ اون دیگه کی بزن دلش اینجا آکواریومه تو حد برینی که اوگیانوس خداییش اینجا سالم بودنت انقدر ارزش نداره بیوم بعد باز سالم موشیده داشین بیرون ما همیشه دلم میخواست یه با رنکشوتیم مثل تول بیشین یه تخته همچین آفتاب میگیرم <laughs> بشین آفتاب نگارو نکرد که آری. وای. آری. هم مالی هم نه خداییشون جو راحتری. حتی خدا ازش که سلامتی رو نگیره. خدا از این خवासन کنه شفا بده ما. ان شاء الله الله. این شفا اولی گرفتی اون هم درست میشه. ای بابا. بودو. ان شاء الله برو میگم مزاحمتون نشم. بور برو برات. برو. تو. میکنی؟ تو سخت دنبال دستشویی میگردی؟ نه الان میام بیا بیرون ببینم اومدم پدر بیا بیرون اومدم وایسا بیا بیرون آقا جون بسته بیا بیرون غزه تموم میشه؟ چی تقوم شه بیا بیرون ببینم چی کار اون تو؟ تو دستشویی چی کار میکنم؟ بیا کنه ببینم ببینم کف دست تو با چی میگردی اونجا؟ هیچی من به دستشوی فرنگی عادت دارم ای بابا برای ببینم برو ببینم اسم شبیه مونا بیادتون هرا نقشه رو ما ریختم پاسد باشه نامردی نکنید ما اینجا مراقب یا اوه یا تو چهره اون شب چه چه خوشم بغی بود چته میگم بیا دلت رو کن ازا بده ما بریم به نفته برو تو تو این از که من یه ذره انگوشه منو نگاه کن پسر خوب ورد مهم تو چرا نمیزنی ما بریم آقا بابا حالمون بعد یه لحظه است برو تو رو بکن باشه برو یه باه بری توی بله تو شوی خواهی گوش بده آلش بلیش بلیش بده آلش بده ببینیم شنگان چی میگه یه لحظ عذیت ده کنیم پایشو نونمو برین تو بابا باشه باشه باش. باش. من نپور بخواهمی چیون نمی خواهم برین تو بخواهم برین تو نشید بابا برین تو نشید رو برین تو نشید رو آیال جان تو نمیخوایی همزاد پندری کنی بابا پدرمون درم کم این تو مشکلت چی آخه چرا نمیذاری به حرف ما گوش نمیدی بذار ما بریم دیگه مشکل خودم و خودم حل مخونم به تو ربی نداره آخا جان دیوی سه تو من خوب پولیه یا نه خودش چکلی این حرف هستی که تو چیکار به اون کارش داری شما در میکنین دو تا مشت علکی میخوری دیوی سه زار تومن میذاریم توی جیبت بری بله بله تو آو من خوند بری تو آن خود تو آو آیا کن یه لحظه صبر کن از این روزه واسه من بری تو من نمی‌کنم برو برو من نمی‌کنم آیا چنگوش بابا نیازی ما حرکت کنند یادت داد آرامش حفظ کنید آرامش بری تو نرس میگه بری تو هر میگه راضی تو بری تو هر راضی شد خودش میاد بری تو تاپاشین میری تاپو جا یان برن تو من خودم میرم بچه چه گور میزنه من تو گفتم میرم باشه باشه اوله اورم تو حاله زنه؟ اصلا حال ندارم تنسانی میری با من بزنه اخ دیگه هی منم هفت تا نمیز می یه چی بشه راست میگه؟ کی قراره راست میگی کی قراره بزناتش من من تو نه بیا بیا نه برو برو برو شوم بفرم اول ما یاره بده کل بده دیگریش بده بی خواه بده ما یاره بده بود نیست بود نیست بولا بده مسخره بازیات چیه بولا بده دیگه میکسین بولا چیکارش کردید یعنی چی مسخره بازیارو در نیارید الان وقتی این حرفو نیست باید بریم مایه رو رد کنید عوش بیاید havas garagha maye من خودم خط به روزیگارم دبه نکن دبه چیه اون بیجا بیجا میو اصلا ما اهل دبه ما بنیسیم چون ما فقط می‌خویم که چیز کنیم میخوایم باید یه راهی بیایم که چیز کنیم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 مش دوستش، کلا من، به هم ترک راحت شدم، آرده من که اتیا دادرام تو خمار شده بودم، وای حال شما بیرون دیروز کس نمی‌آمد سرمان می‌چپم توی کن. توی کمپ خماری میزنم بیرون نمیدونم دونم چمب. من دیوانه رو بگو خود معرف اومدم خود کدوم آدم آقلی با پای خودش میاد کمپ برو نگاه کن جلو کسی نیست برو برو برو برو برو برو برو برو برو برکت این بپیشانی این چیه؟ آدام سان تی ازوه خوشنا ده نه نامرد دوست از زوز بذاری شهادوزه تو دیگه کسی من کترام هیچ وقتم شهادوز نبودم خب گفتم اونا وقتی میشه ما یه چوب سردش هم بیاریم علا که خرجه اون نکنیم اینو بزنیم واسه کره فرارمون. خجالت بکش ببند دهن تو اومد اومد اومد اومد اومد اومد دیگر یک ماشینو بشو بیا کنار ماشین هل کوپتر بشینه یه شنا میگه یه خانو بشو بدین اومد ما باید میریم ابودان چی داریم این مسیر شبودانه هر جا بهتر از اینجاست نمی‌توابه مسیرش که بشه بهتر شفا ورشه بیا ماشینا سرین سرین سرین سرین سرین جارو نگه نمی داره. با با با. <تصفح> بابا چرا؟ بیا این تلفن ماشین ماشینورا. اون ساريه، اون ساريه. فایسا، فایسا، فایسا. پریمالا، پریمالا. بابا. بابا صبرش دیگه اتوبوس رو نمیبینی؟ ماشین داره میاد جلوشو بگیر. موتور موتور موتور جلوشو بگیر. جلوشو بگیر. فایسا، فایسا. آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! گوش بده آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! آگر! ما ماشینمون اینجا خراب شده یعنی بنزین تموم کرده من و این رفیقامون برسون تا سر جاده بعد اونجا پیاده میشیم یه ماشین میگیریم میبینم رفیقامونو سوار می کنم قربونت ببا نوکرسا من کار دارم باید برم ما کار دارم قربونت میدونم کارداری هر چه قدم پولش بشه میدم منو سوار کن با این دوست سمون بهت میدم چرا تو رو سوار کنه بابا ول میای که چه فرقی میکنه خیلی فرق میکنه شما خانم خانوم ما ماره کلفت مگه تک میاریم تمام شد هر فا تک میاریم آند ما دوتا میریم یکی دیگه سواریم فقط تک چی کاریی که بگیر دوتا دوتا یا یکی یکی بله خب بنا داشت باش بنا داشت یه لحظه باش سوارم هر کی تک بیاره سوار موتور میشه یه مرتبه دیگه هر کی تک بیاره سوار موتور میشه چونم یک وقت دو نیمسه خانم من کشاوارده بدبختیم خانم هاش کشاواز ناسم منم کشبرا همه حامل است چی؟ خانمم باردار چشم انتظاره باید برم چی؟ زنت بارداره؟, بارداره شرخش اینه که اگه شما رفتید اون تو و تر کردید اسمش میشه همایون. و الان اسمش هم سروشه چی شد با, با؟ چی شد؟ بذاریم بره بابا رو بله من کنه یه بالا مهندس بازی در نیار برو آقا برو. چی میگیم تا علی که بره خود لاف میای ما کلی نقشه کشیدیم کلی فرار کردیم تا ایجا زحمت کشیدیم اومدیم آلاد که تو بره ما احساساتی شدی برو آمیم احساساتی مهندس بازیش بره ما گل کرد نسخره تک آوردیم نمیان آقا ما رفتیم آ. بذار نگی ما بی منفعت بودیم ما هی با تو نه بدن نگی که الکی نگی که ما رو نامردی کردن نگی جامو گذاشتن بیا ببینم تک بندازاصت پس ما تک, تک, تک, تک, تک بنداز هر کی تک بیاره با این موتور میره هر کی تک بیاره با این به جای اون میره هر کی تک بیاره با این به جای اون میره هر کی تک بیاره با این به جای اون میره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 Hadi verim diye. Veri veri ver. Verim takesin indi. Allah. Veri burneş. He. He. He. Çetçe. Balkon. Burayı balkon. Bu öyle hayır. Çetçe de gel balkon. Ve ez işte diye. Ya oh, çe. Aga, güncelle kon diye. Ha. Ya jama adam <tık> الانت میکنی میخود میکنی <تصفيق> همینه همینم کم بود دیگه دونی چی میگه ها چی میگه ولش کن ولش قرار چی میگه چرت میگه بیا بریم بیا بیا حال بده بریم م... میگه میخوام برم کمپ ترک کنم تو میخود میکنی میخوای بری کمپ ترک کنی کی ای چاب یالا چاب یو ولش کن بیا بریم چرت میگه بیا بریم آخه، نمیشه رفیخ اینجوریمه کی؟ کجا میری؟ برکار ببینم این میگه؟ بسیش بگو، تو هم میخواهیم مثل بقیه منو تنه بذاری بری؟ نه به جون عبد، نه به عزیز کس هم نه، به جون مادرم نه ولی آخه آخه بابا منو این خیلی با هم رفیخیم همه چی با هم بودیم خوبی ها، بدی ها، سختی ها دودلم چرا؟ تو را چیگاه کنم؟ خوب. مردم آمن؟ اونو بلکنم تو رو چیکار کنم تو رو چیکار کنم اونو بلکنم نمیتونم بکنم تو چی؟ نه نه نه عبده که آدم تن... دا... عبده که آدم تنها که برو برو ما آخری خط نه نیستی برو. عبد تنها نه برو نه برو نه نه, نه. نه. نه. برو برو <تصفيق> امید موازم خودت باش امید من رفتم بچه آبادانم امید من رفتم ما بچه ماره خدا بزنبه! از تو میدونی اجیزمونه ما از نخل افتادم بری از از که میاخذادم شکر خدا بزرگم یک معتاد سلام بزرگ سلام سلام به دلای پاکتون بعد چون ما فکر میکردم چون گرفتارم به خدا نمیرسم اما از موقعی که اومدم اینجا فهمیدم که چون به خدا نمیرسم گرفتارم سلام اوشنگ هستم اما نه یه معتاد سلام اوشنگ. سلام به دلای خستتون سلام به اون نگاه های مهربونتون داره خدا رو شکر کنم تو این مدت 21 روز که اینجا بودم دستای گرم شما تو دستان بود خدام کمک کرد تا تونستم ترک کنم سلام کسرا هستم یک معتاد سلام کسرا خوشحالم که تونستم این دوره 21 روزه رو سپری کنم و الان پاک پاکم واقعا موجزه بود که من تونستم ترک کنم اون دوره‌ای که آدم اعتیاد داره واقعا فکر می‌کردم من دیگه نمیتونم ترک کنم و فقط مرگ می‌تونه نجات بده. همه آدم‌ها لغزش میکنم همه آدم‌ها وقتی توی پرتگاه وای می‌میستن به نظر من باید به خدا اعتماد کنم یا خدا پشتشون رو می‌گیره یا بهشون پرواز کردن یاد میده. الان یاد قدیمم میفتم چه توهمایی می‌زدم. رفیقای توهمی داشتم ولی الحمدلله خدا رو شکر الان رفیقای واقعی بس شما دارم که کمکم کردین که من ترک کنم دم همتون گرم آقا بزرگ از خونه آقاوشنگ زنگ زدن میگن بچه‌ش به دنیا اومده خانومش هم سلام رسون گفت اسم بچه‌رو گذاشتن همایون به دست نداره مبارکه مبارکه آقا بزرگ تازه وارد داریم اگه سلام میدونی بیارمش تو بفرما خوش اومده باززم توی ادو یه موتاد حرکت از نو یا سر از ذرب میدتونهایی میون کود و خاکستر نمیتونی خودت باشی نمیشه حال تو به تاشق یا از دور تو لبخندی تو سکوت تو بختو تش میشه داری تو شعل میسوزی خاک خاکستری میشه پاشو از این همه خواب ببین ما تو بیداری و فدا فکر داری جون